السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله و لرسوله و المؤمنين اشهد أنك قد أقمت الصلاة و أتيت الزكاة بالمعروف و عن المنكر و في الله حق جهاده حتى أتقى اليقين رحمك الله حيا و امام خیلی خصوصیات ممتاز فردی داشت اما توفیقات او بالاتر از آن بود که متکی باشد به خصوصیات فردی یک انسان هرچی هم بالا شجاعت امام، آگاهی امام، عقل امام، تدبیر امام، دوراندیشی امام اینا چیزای بسیار ممتازی بود در اینا هیچ شکی نیست اما اون توفیق ها ناشی بود از در درجه اول اخلاص او اخلاص مخلصین له دین مخلص خدا بود کار را فقط برای خدا انجام میداد و غیر لذا بود اگر همه دنیا هم در مقابل او قرار می گرفتند و از او چیزی رو میخواستند او انجام نمیداد وقتی که تشخیص نمیداد که مورد رضای خداست اول اخلاص